سلام دوستان گرامی در این گفتارها بنده قرار دادم با خودم که داستان رستم و سهراب رو به عرض برسونم این داستان رستم و سهراب بدون هیچ تردیدی معروف ترین داستان شاهنامه فردوسی است و بعد بنده برمیگردم بر سر اینکه چه خصوصیاتی این داستان داره ولی قبلا بر طبق روشی که در سایر گفتارهای خودم داشتم یه مقداری درباره فردوسی و درباره شاهنامه گفتگو میکنم و این دفعه قصد بنده این است که یه مقداری درباره منابع شاهنامه و میزان وفاداری فردوسی به این منابع و مطالبی از این قبیل عرض بکنم شاهنامه فردوسی رو قبلا گفته این که منابع کتبی داشته، منابع شفاهی هم داشته و فردوسی در طی زندگانی خودش با زحمت و با کوشش سعی می‌کرده که این منابع رو از هر کجایی که هست به دست بیاره و از اونها استفاده بکنه. اما اونچه الان می‌خوایم بحث بکنیم این است که میزان وفاداری فردوسی نسبت به منابعی که در اختیار داشته تا چه حده به عبارت دیگه آیا فردوسی عیناً مطالبی که در منابعش بوده به نظم آورده یا اینکه از خودشم دخل و تصرفاتی در او کرده جواب این است که فردوسی در عین حال که لباس بسیار فاخر بسیار زیبای شعری بر تن مطالب هماسه ملی ایران کرده در این حال کمال وفاداری رو نشون داده و این کار فقط از آدم بسیار بسیار مختدری یعنی در حقیقت از آدم نابقهی مثل فردوسی برمیاد که هم اصالت مطلب رو رعایت بکنه و به متن وفادار باشه و هم اونها رو به زبانی بازگو کنه که مطلقا ملال خیز نباشه و خاننده نتوانه از او دل بکنه دلیل این عرضی که بنده میکنم این از که خوشبختانه بعضی از این منابع در طی قرون و اثار باقی مونده و به دست ما رسیده حتی بعضی از این منابع به زبان پهلوی امروز در اختیار ما قرار گرفته دو تا رساله پهلوی هست یکی به نام یادگار زریران و دیگری به نام کارنامه اردشیر بابکان این دو رساله هر دوش در شاهنامه فردوسی مورد استفاده قرار گرفته یادگار زریران عبارت است از شرح جنگ های گوشتاسب و اسفندیار در برابر ارجاس به تورانی برای پیشبرد دین زردشت و این قسمت رو دقیقی در هزار بیت خودش یه قسمتیش رو یاد کرده یه قسمتی رو هم فردوسی گفته اما کارنامه اردشیر باوکان داستانی است که تمامش رو فردوسی در آغاز بخش تاریخی شاهنامه آورده در حقیقت این نوعی سرگذشت افثانه ای اردشی بابکانه و داستانی به نام داستان کرم هفتواد این داستان از داستانهایی بسیار دلکش شاهنامه است و با اینکه در بخش تاریخی یعنی در روزگار اردشیر واباکان آمده ولی جنبه افثانهی داره قصه عبارت از این است که در شهر کرمان یه کسی بود یه مردی که تمکن و دارایی چندانی هم نداشت و دختران داشت و این دختران برای کمک به خرج خانواده پمبریسی می و کرمان هم شهر بسیار کوچکی یا ده نسبتاً بزرگی بود و دختران ده می‌آمدن همه در یه باغی اونجا می‌نشستن هم و هم گفتگو می‌کردن و هم پنبه می‌ریستن تبدیل به نخ می‌کردن و این هفت وات هم دخترانش رو می‌فرستاد اونجا یکی از دختران هفتواد در اونجا یه روزی زیر درخت سیبی می‌بینه که سیبی افتاده زمین اون سیب رو برمی‌داره که بخوره وقتی که باز میکنه میبینه یک کرم ضعیف نحیفی در این سیب هست رحمش میگیره به این کرم و او رو جداگانه میذاره لای پنبه و پذیرایی میکنه ازش نگهداری میکنه و اون روز تصادف میشود که دو برابر روزهای دیگر نخ میریسه و این رو به فال نیک میگیره و از برکت پذیرایی که از اون کرم کرده در حقیقت میدونه بعد هم به همین پذیرایی ادامه میده و در نتیجه روز به روز کار این خانواده رو به ترقی میگذاره و درهای دولت و مکنت بر روی اونا باز میشه تا به جایی که هفت حاکم شهر کرمان میشه و کرم هم روز به روز بزرگتر میشه و دروشتر میشه تا به حالت اجده های بزرگی در میاد و هفتواد که تمام این بخت و اقبال رو از برکت وجود کرم میدانسته برای او پرستشگاهی ترتیب میده گود بزرگی میکنه کرم رو در اونجا میذاره ادهی روحانیان کشیشان پرستاران کرم در اونجا میگماره و معبدی ترتیب میده و مردم رو به عبادت این کرم و پرستش این کرم وامی داره و همونجا بودن اردشیر وقتی که میخواد ممالک رو بگیره وقتی میرسه به کرمان در برابر هفت وات شکست میخوره و خیلی ناراحت میشه برای اینکه تا اون روز همه اقداماتش با پیروزی رو برو شده و اولین است که شکست میخوره ناراحت و شب افسرده بر میگرده وقتی که برمیگرده و در خیمهش نشسته بوده بر سر شام می بینه که یک تیر از بیرون آمد و در شکم بره بریانی که وسط سفره گذاشتن جا گرفت. وقتی تیر رو برمی داره و نگاه میکنه می, کنه می بینه که نام به این تیر بسته است و رو که میخونه می, خونه می بینه که یه آدم خیرخواهی نوشته است که تا وقتی که این کرم در اون شهر زنده است و در معود خودش هست تو هرگز به کرمان دست نخواه یافت و اولین اقدامی که باید بکنی برای دست یا به شهر کرمان این است که این کرمه و از بین ببرید فرد شیر تدبیری می‌کنه و داستانیو میاد و میادو به صورت بازرگانانم میرن و اون مودان رو مست میکنن و شب وقتی چون رو این تنم شده بود اصلاح به تنش کار نمیکرده شب که میشه که قرار بود از غذای کرم رو که ظاهرا مقداری شیر و برنج پخته بوده که می دادن بهش وقتی موقع غذا خوردنش رو دهنش باز میکنه اینا دیگه صرب گداخته تهیه کرده بودن از پیش و او رو می تو دهان کرم و کرم کشته میشه و بعد اردشیر کرمان میگیره و فردوسی میگوید که شهر کرمان هم اسمش کرمان به همین مناسبت وجود هفت باد شده و الا اول اسمش کجاران بوده خود فردوسی هم همین است رو هر حال این قصه افسانه از طبیعی است و این وچه اشتقاق هم وچه اشتقاق درستی نیست اما تمام این مطالب به دقت در کارنامه اردشیر بابکان آمده این کارنامه متن پهلویش هست ترجمه هاش به زبانهای اروپایی فرانسوی انگلیسی آلمانی و چند ترجمه به زبان فارسی هم در دسترسه و به سهولت میشه او رو مطابق کرد با شعر فردوسی و دید که فردوسی تا چه اندازه نسبت به متنایی که در اختیار داشته وفاداره بنابراین ما میتونیم به طور کلی این نتیجه رو بگیریم که فردوسی کوشش میکرده که نسبت به متن خودش کاملا وفادار باشه و هیچ در او دخل و تصرفی نکنه مگر چیزهای بسیار بسیار جزئی که از نظر روش نگارش و روش بیان لازم بوده اما در این حال باید ارز کنم که این روایت های ملی تنها نوع این روایت ها و اصلا یک دونه نبوده. بسیاری از این روایت ها که به صورت های مختلف شرح داده شدن و بعضی از این صورت مختلف حتی به دست ما هم رسیده یه قسمت شاخ و برگ هم در هر کدوم از این داستان ها وجود داشته که اینا از قدیم متداول بوده و قسط خانان و افسانه‌گویان اینها رو میگفتند ولی به اون اهمیت و شهرت و اعتبار اصل قسط نبوده فردوسی ناچار بوده اولا در وقتی که روایت ها با هم اختلاف دارن یکیش رو انتخاب کنه دیگه دو جور سه جور که مثلا شرح کشته شدن سهراب رو نمیشه بیان کرد. یکیشو که به نظرش معقولتر میآمده و با اون سلیقه بسیار بسیار ای که داشته بهترین رو اون رو که مناسب برای گفتار خودش میدیده انتخاب میکرده و باقی رو فرو میگذاشته. از این گذشته عرض کردم یه قسمتی از این شاخ و ها و از این جزئیات و توضیحات هست، که بوده هنوزم سر زبان نقال ها هست و ما نمیدونیم از کجا اینا زبان به زبان و سینه به سینه نقل شده مثلا در داستان رستم و سهراب رستم میاد به شهر سمنگان و اونجا تحمیلی رو میگیره که بعد عرض خواهیم کرد اسم شاه سمنگان مطلقا در شاهنامه نیامده. فقط صحبت شاه سمنگان اما تمام نقال های ایران از کسانی که در آذربایجان سخن میگن تا کسانی که در سواحل خلیج فارس و بحر عمان و اهواز و خوزستان به قصه خانی اشتغال دارن تمام اینها یک اسم برای پادشاه سمنگان دارن و او سهرمشاه است که معمولا میگن ولی این از کجا و اینا رسیده ما نمیدونیم یا مثلا گیو داماد رستم و پسر گودرز لغبی داره در بین قصه معروف است به گی و الف چشم و علف چشم میگفتن برای اینکه که که مردمک چشم او به خلاف مردمک چشم آدمیان که همه چنان که می دونید گرده و دایر شکله مردمک چشم گی به صورت یه خط قائم بوده است خط عمودی بوده است مثل مردمان که چشم گربه و به همین دلیل به او میگویند گی و علف چشم. همچنین حوادث فرعی بسیار زیاد در داستان رستم و سهراب هست. خوشبختانه یک نسخه از این روایت ها و این شاخ و برک ها و مسائل فرعی به دست ما رسیده و چاپ شده یک قصه خانه معروف اسپانی، معروف به مرشد عباس ذریری این نشسته است و با همت بیمانندی کتاب مفصلی که یک هزار صفحه به قطع رحلی یک هزار صفحه به قطع بزرگ به قطع کاغذ که ما ورق کاغذ رو در دوره تحصیل در دوستان و دبیرستان می گرفتیم یک هزار صفحه از اینا با حد نسبتا ریز خوش نوشته و قصه های شاهنامه رو به ترتیبی که در بین قسط خانان جریان داره شرح ددم و این کتاب هست من امیدوارم که یه روزی تمامش چاپ بشه نسخه ای از این کتاب در اختیار آقای دکتر جلیل دوستخواه هست دکتر ادب فارسی و از شاهنامه شناسان و همش در پی این هست که بلکه این نسخه رو به چاپ برسونه ولی یک قسمتش یعنی داستان رستم و سهراب جوداگانه با چاپ بسیار زیبای خوبی چاپ شده است به سرمایه انتشارات توس و با دقت و زیر نظر آقای دکتر جلیل دوستخواه و در اختیار همه هست و دوستان عزیزی که علاقمند باشند میتوانند این داستان را رو به روایت مرشد عباس زریری تهیه کنند و با داستان رستم و سهراب که در شاهنامه آمده مقایسه کنند و ببینند که قصه در مجالس نقالی و در شرح این داستان رستم و سهراب چه مطالب فرعی رو میگن که در شاهنامه نیست علاوه بر این یه مقداری داستان هست در شاهنامه که اینا رو باید بگیم اینا داستان های است. یعنی از قدیم از دوران خیلی قدیم از قرن های چارم پنجم همینطور یه گویندگانی که ناشناس هستند ما این رو نمیشنسیم آمدن یه مقدار شعرای سرودن گاهی این شعرا یکی دو بیت بیشتر نیست و گاهی یک داستان کامل، این رو سرودن و بعد بدون اینکه مطلقا اسمی از خودشون ببرن یا سخنی بگن این رو در داخل شاهنامه جا دادن یعنی الهاق کردن بی این که اصلا ذکری از اونا به میان بیاد و بعدها محققان فهمیدن که این بیتها الحاقی است بر طبق قواعد تحقیق بنده برای اینکه یک یه مزنه یه نمونه از این کار به دست دوستان عزیز بیاد یکی از اینا رو میگن یکی از صرفات بسیار بسیار قدیمی که شده سه چهار بیت سه بیت یا چهار بیته که الحاق شده به مقدمه شاهنامه و قدیمترین نسخه شاهنامه ای که ما الان در دست داریم و اون نسخه فلورانس هست مورخ 614 یعنی دویست سال بعد از اتمام شاهنامه نوشته شده در او هم این بیتا هست بنابراین معلوم میشه که قبل از قرن هفتم این بیتا به شاهنامه افزوده شده میدونیم که فردوسی شیعه بوده و تصریح هم کرده به این کار بنابراین طبیعی است که در موقع ستایش اولیای دین از رسول اکرم ستایش بکنه و بعد هم بره به داماد و جانشینش مولای متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام و فرزندان او که اعمه دوازدهگانه ما قومشیه هستند اینها رو ازشون تجلیل کنه و ستایش بکنه. همین کارم کرده منتها ما میبینیم که بعد از ذکر پیغمبر اکرم بعد دو سه بیت در ستایش ابوبکر بکر و عمر و عثمان آمده بعد رفته به ستایش علی بن ابی طالب و خاندان امامت و این با آین فردوسی جور در نمیاد با بیت فردوسی هم جور نمیاد اولش یعنی اونچه چه در باره ستایش ابو بکر سروده در حقیقت ترجمه یه حدیثی است که از قول پیغمبر اکرم نقل میکنن که فرمود که از بعد اسلام آفتاب بر هیچ کس بهتر از ابو بکر نتابیده و بیتی که در شاهنامه فردوسی آمده اینه که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس زبو بکر به عمر کرد اسلام را آشکار آخر کار ندارم رو نمیخوام بخونم ولی این بیت ها است و برای اینکه یه خود روش کار کردن در این و شناختن این مطلب رو هم به بدم آقای دکتر خالقی که اینا رو الهاقی تشخیص داده و در گفتاری نوشته که البته در شاهنامه خودش نیست در مقالات که در پیرامون شاهنامه نوشتن و منتشر شده اونجا می‌فرمان که کلمه بعد یک بار فقط در شاهنامه آمده اونم در همین بیت ستایش ابوبکر که قرشی بعد از رسولان مه نه تابید برکست بوبکر به ایشون می که کلمه بعد جزء کلمات بسیار بسیار رایجه و امکان نداره که این در کتاب عظیمی مثل شاهنامه فقط یک بار آمده باشه جزء به یه طریق و اون طریق این است که در روزگاری که فردوسی شاهنامه رو می سروده این کلمه بعد جزء واژگان فارسی معمول گفتاری در نیامده بوده و بهجاش پس و سپس و پستر و امثال اینا بوده و کلمه بعد در قرنهای آینده وارد زبان گفتاری فارسی شده به این دلیلم یک بار بیشتر در شاهنامه نیامده در همین بیت ستایش ابوبکر و همین رو آقای دکتر خالقی سند الهاقی بودن این بیت ها بخصوص به خصوص که با مذهب فردوسی و با گفته های فردوسی و با سایر مطاربی که در شاهنامه آمده هم تضاد داره همچنین داستان درسته هستش که الهاقی است مثل داستان کک کهزاد یعنی کک پسر کهزاد که اسم پهلوانی است داستان دیگری به نام داستان سوسن رامشگر که زن فریبنده عیاری بوده است که رامشگری میکرده و میامده و پهلوانان ایران رو مست میکرده و بیهوش میکرده و به بند میکشیده و داستانی داره که به نظم ماده در نسخه شاهنامه هست یا داستان دیگری است متعلق به روزگار کودکی رستم رفتن رستم به کوه سپند برای خونخواهی جدش نریمان که اینم آقای دکتر خالقی در نسخه خودشون در همون جایی که از زاده شدن رستم در جلد اول یاد میکنن اون قسمت بیت‌های های الهاقی هم در هاشی آوردن و دوستان میتونن ببینن در اونجا به هر حال اینا داستان های است و حالا این نکته بسیار مهمه که ما باید ببینیم که چطور اتفاق میفته که یه شاعری بیاد وقت خودشو صرف کنه زحمت بکشه یه داستان تهیه کنه این داستان رو منظوم کنه بعد نه اسمی نه چیزی از خودش این داستانو در شاهنامه و به عنوان اینکه این بیت ها مال فردوسی است یا شاعر دیگری مثلا بیاد و سه چهار بیت بسازه در ستایش خلفهای راشدین و این رو به عنوان شعر فردوسی در قدیمترین نسخه شاهنامه وارد کنه این چطور ممکنه چنین چیزی اتفاق افته برای اینکه معقول به نظر نمیاد که کسی این کار لغو رو بیاد انجام بده بدون اینکه هیچ اسمی رسمی از خودش در میون باشه. جواب این است که شاهنامه فردوسی وقتی که سروده شد و تمام شد و مردم رو خوندن و بین مردم منتشر شد به عنوان یک میراث ملی به عنوان یک مل که فرهنگی تمام مردم ایران معرفی شد به صورت یک دارایی همگانی یک ثروت عمومی مردم ایران درآمد علاوه بر این بسیارند بسیارند کسانی شوعرایی که فردوسی رو ستایش کردند و اینجا باید عرض بکنم که در میون گروه انبوه شاعران ایران که شاید تعدادشون از سی هزار متجاوزه دو شاعر بیش از همه مورد ستایش همکارانشون قرار گرفتن و میدونیم که این ستایش یعنی این هم همچون به چشم داشت سله و انعام نبوده و احیاناً بسیاریش بعد از مرگ این شعرا بوده بنابراین از صدق دل و روی خلوص نیت سرودشده این دو شاعری که بیش از همه مورد ستایش همکاران خودشون قرار گرفتن یکی رودکی است و یکی فردوسی و اگر میان این دوتا هم بخواهیم اولی رو انتخاب کنیم بعد عرض کنیم که فردوسی است که بیش از تمام شاعران فارسی زبان مورد ستایش همکاران خودش قرار گرفته خب وقتی که فردوسی به عنوان محبوب ترین شاعر ایرانی معرفی بشه و کار او یعنی شاهنامه هم به عنوان ثروت ملی تلقی بشه تمام مردم دست و دلشون برای این کتاب می‌لرزه. احتمالاً مثلا در یه روزگاری یه شاعر بیچاره‌ای دیده است که پادشاهی یا فرمانروایی هست بسیار تعصب داره در دین، تعصب داره در تسنن و به این دلیل ممکن است که به این شاهکار ادب فارسی و به این ثروت ملی ایرانیان زیانی برسونه تحت این بهانه وحی که فردوسی شیعه بوده و امثال این حرف یا نه اصلا اون مسئله نباشه خود این شاعر از یک طرف فردوسی رو بسیار دوست می داشته اینا احتمالی که من درس می کنم. خود شاعر فردوسی رو بسیار دوست می داشته ولی چون خودش سنی بوده و می که فردوسی شیعه است فکر می کرده که افسوس که این شاعر مذهبش مذهب حق نیست و من برای اینکه بار گناهان اون تخفیف پیدا کنم میام این چند بیت رو در ستایش خلفای راشدین میسازم و در شاهنامه جا میدم به همین دلیل میاد و این زحمت رو به خودش میده این بیت رو میسازه یا از ترس اینکه که گزندی به شاهنامه برسه یا به عنوان اینکه در حقیقت آرامشی و آمرزشی برای روان فردوسی بخواد میاد این بیت رو میسازه و به شاهنامه الهاب داستانهای الهاقی هم به همین ترتیب وقتی که شاهنامه به صورت سروت همگانی و مال همه مردم ایران درآمد و هر کسی نسبت به او احساس تملک کرد و او رو میراث خودش دونست یه شاعری هم که مثلا یک داستانی از داستانهای هماسه ملی مثل داستان سوسن رامشگر یا مثل داستان کوک کهزاد رو دیده و دیده است که این در شاهنامه فردوسی نیامده با خودش فکر کرده که به این ترتیب این شاهکار ملی ما نقص داره و برای اینکه این نقص رفت بشه بهتر است که این داستان رو به نظم در بیاره و به شاهنامه الحاق کنه بدون اینکه چشمی به نتی یا تشویقی یا حتی باقی گذاشتن اسم خودش داشته باشه به این ترتیب می آمدن و این داستان ها رو می گرفتن و می ساختن و در حقیقت شاید پیش خودتون فکر میکردن که برای تکمیل شاهنامه اینها رو به شاهنامه الحاق بکنن و کردن اما قافل از اینکه اولا کاملا پیدا میشه روش سخن گفتن فردوسی با روش سخن گفتن دیگران با هم فرق داره به قول بهار این گونه سخن گفتن حد هم کس نیست دانت شمن آراستن روی وسن را این که اولا پیدا میشه بعدم نسخه ها هست راه تحقیق بازه از این گذشته دیگه اون اختلاف روایت ها رو که قصه مثلا کشته شدن سهراب چند جور یاد شده او رو که کارش نمیشه کرد اینا وجود داشته فردوسی آمده است و در اینا دقت کرده یه قسمتی از داستانا بوده که دیده و عمدن فرو گذاشته اونها رو یه قسمت را دیده که به درد کار اونه نمیخوره ازش چشم پوشیده و شاهنامه رو به این صورتی که خودش میخواسته در اما باید بگیم که خب این داستان که فردوسی فرو گذاشته یعنی دیده چگونه بوده و به چه دلیل فردوسی که آمده و قصد به نظم آوردن داستان ملی و هماسه ملی رو داشته و در حقیقت خیال میکرده است که این داستانها و این روایتها تاریخ ایران باستانه چگونه است که خودش آب و آمدن بیاد یه مقداری از اینا رو پرو بگذاره و از اونا یاد نکنه اول برای اینکه این, این بحث رو بتونم بنده روشن بکنم باید عرض بکنم که بعضی از این داستان ها مثلا کدوما هست؟ یکی از پهلوانان بزرگ هماسه ملی ایران گرشاسب نیای رستن داستان گرشاسب در دوره فردوسی بوده و وجود داشته و بدون شک با اون کوششی که فردوسی برای به دست آوردن ملی و داستان های ملی ایران می امکان نداره که او رو در دست نداشته باشی پنجه سالی بعد از خاتمه شاهنامه بعد از پایان یافتن شاهنامه شاعری همشهری فردوسی اسدی توسی داستان گرشاس رو به نظم برده و الان گرشاسنامه اسدی توسی جزو هماسه های شناخته شده یعنی آثار هماسی شناخته شده زبان فارسی است و گروهی از منتقدان و عدیبان بعد از شاهنامه فردوسی گرشاسنامه رو حماسه شاهنامه با گرشاسنامه که بلافاصله بعد از او شماره دوم رو میگیره در حقیقت از زمین تا آسمان گروهی مثلا آثار دیگری از قبیل اسکندرنامه نظامی یا نظایر او رو به جای گرشاسنامه معرفی میکنند ولی حالا ما در پی اصطلاح ارزیابی هنری گرشاسب نامه نیستی بحث ما این است که چطور شده که فردوسی این داستان رو که بوده اصلا نیورده و جز یه ذکر بسیار مختصری یه چند کلمهی سخنی از گرشاسب نیست و حال اینکه که اصدی توسی در گرشاسب یه مقداری سعی میکنه که گرشاسب رو نسبت به رستم براش برتری قائل بشه و بگوید که اگر رستمگاهی گرفتار شکست شد و پشتش به زمین رسید مثلا در داستان رستم و سهراب یا در جنگ مغلوب شد مثل داستان رستم و اسفندیار گرشاس هیچ وقت در هیچ جنگی تعم شکست رو نچشیده و بنابراین به نظر اسدی میاد که او افزل از در حقیقت هم اسم گرشاست بر اوستا هست یعنی از پهلوانان بسیار بسیار قدیمی است و جزء جاویدانان هم هست به عقیده زردشتیان و معتقدند که او فره ایزدی داره فر پهلوانی داره و به همین دلیل الان در خوابه تا وقتی که در آخر زمان زحاک بندهایی رو که فریدون بر اونهاده در کوه دماوند این بندها رو بشکنه و بیرون بیاد و روی زمین فساد و آشوب و بسیار بکنه اون وقت گرشاس از خواب بیدار میشه و میاد و زهاک رو میکشه به هر ذکر گرشاس در اوستا هست و حالی که مطلقا نامی از رستم در اوستا نیست و رستم پهلوانی است که بعد از پیدا شدن اوستا وجود آمده و در حقیقت ذکرش نمیتونسته در اوستا باشه با این حال که او پهلوان بسیار بزرگی است، فردوسی شاید به این احتمال که دلش نمیخواسته کتابش بیش از یک چهره برجسته پهلوانی داشته باشه یعنی تمام پهلوانانی که نامشون در شاهنامه آمده همه در پیش پهلوانی رستم رنگ میبازن چه از لحاظ عقل و تدبیر چه از لحاظ به متانت آرامش، تحمل و این که در جاهایی که لازم نیست است به سلاح ببره نبره و چه از لحاظ جنگجویی و رشادت چه از نظر حفظ حیثیت پهلوانی رستم یه چهره یگانه است در شاهنامه فردوسی و فردوسی دلش نمیخواسته که با ذکر گرشاست چهره ی رستم رو یه قدری کمرنگ بکنه و دو تا چهره پهلوانی دو تا پهلوان بزرگ رو در داستان خودش بیاره این شاید دلیلی باشه البته ما اگر جواب قطعی رو بخوایم باید از خود حکیم بپرسیم اگر ممکن باشه که فعلا متاسفانه امکان نداره بنابراین به حدس و قیاس متوصل میشه. همچنین از داستان دیگری داستان بسیار مفصلی هست از خود شاهنامه فردوسی بزرگتر به نام برزونامه برزو پسر سهراب و نوه پسری رستمه و او هم کسی است که در داستانش آمده است که در جنگ و در روبرو شدن با رستم کتف رستم رو شکست و پهلوان بسیار نامدار درجه اولیست است نامه وجود داشته داستان برزو هم وجود داشته ولی فردوسی باز او رو فرو گذاشت داستان دیگری هست اینا فقط بنده داستانهای بسیار معروف رو عرض میکنن و الا داستانهای دست دوم و داستانهای که کمتر معروف هستن خیلی خیلی زیادن و اگه همه اونها رو بخواید ببینید باید رجوع بفرمایید به کتاب با ارزش استاد بنده جناب دکتر صفا به نام هماس سرایی در ایران که اونجا تمام اینا یاد شدن ولی هماسه های بسیار معروف یکی دیگهش سام نام است سام هم جد رستمه گرشاسب جد اعلای رستمه سام جد مستقیمشه پدر نریمانه نریمان، سام پدر زال ظالم پدر رستم یعنی درست جد رستمه و داستان او وجود داشته چند قرن بعد در قرن هفتم. فردوسی در آخر قرن چهارم شاهنامهش تمام میشه در سال 400. خاجوی کرمانی در قرن هفتم داستانهای سام رو به نظم در میاره تحت عنوان سامنامه که این کتاب چاپ هم شده و در دسترس. یا کتاب دیگری هست هماسه باز معروف دیگری به نام بهمننامه که معروف است که مستند و مربوط به یکی از شوهرا نسبتا قدیمی ایران به نام ایران ابن او خیر که این کتاب هم اخیرا چاپ شده و هست کتاب های سامنامه و کتاب دیگری به نام فرامرزنامه که داستان پلبانی های فرامرز پسر رستمه و بهمن نامه همچنین اینا در هندوستان به چاپ سنگی رسیده بوده و اخیرا، بهمن نامش چاپ نسبتا زیباتر مرتبتری هم پیدا کرده و در ایران منتشر شده ولی نسخای چابسنگی سامنامه و فرامرزنامه هم هست در کتابخانه ها و اگر کسی بخواد ممکنه به اونا مراجعه بکن این داستان ها بدون شک بدون شک همه در اصر فردوسی وجود داشتن فردوسی هم از وجود اونها آگاهی داشت علاوه این عرض کردم که بسیاری از این داستانان بوده که روایت های گوناگون داشته ما روایت سهراب و بعد در طی داستان رستم و سهراب به عرض می‌رسونیم یک هایش و فردوسی ناچار بوده یکی از رو انتخاب کنه حالا یا فردوسی همونطوری که در مورد گرشاس عرض کردم نمیخواسته به جز یک پهلوان در جلو صحنه به صورت برجسته معرفی بشه یا اینکه اصلا بافت داستانهای اون پهلوانان دیگر رو شایسته برای اینکه یه شاهکار هماسی به وجود بیاره نمی دیده. و حقیقت قضیه این است که مثلا گرشاسنامه عصدی که خودش 9 هزار بیت بیشتر نیست و شاهنامه در از 60 هزار بیت بوده و الان دو هزار بیتش در اختیار ماست تقریبا یک ششان شاهنامه فردوسی است با این حال اولا بسیار خوندنش دشواره یعنی خاننده بارها ملول میشه و دلش میخواد که داستان بگذره زمین و دوم اینکه در حقیقت به قدری مطالب اندرزی و سفارش تربیتی و پند و نصیحت در این داستان هماسی هست که گویا مرحوم رشید یاسمی استاد متوفای دانشگاه تهران یک کتابی ترتیب داده تقریبا نصف گرشتاستومه اسدی در حدود چهار هزار بیت به نام اندرزنامه اسدی توسی و تمام اندرزهای توی گرشتاستومه رو آورده بیرون خب, خب کتاب حماسی که اولش شاعرش بگه که این پهلوان برتری داره نسبت به رستن برای اینکه ایش وقت شکست نخورده بعد در شرح احوالش نیمی از سرگذشتش رو پند و اندرز دادن به بچه و به کسان دیگه و به خلاصه بحانه همیشه پیدا میکرده برای اینکه شروع کنه به پند و اندرز دادن این کتاب هماسی بی نمیتونه باشه یا همینطور کتاب های دیگر حالا سامنامه یا فرامرزنامه یا بهمننامه بنده اینا رو دیدم یا اینکه واقعا شعرای اینها توانای شعر گفتن نداشتن و شعرشون مملو و از عیب و نقصه یا اینکه اونا درست گفتن البته به فردوسی رسیدن که افسانه است او که به کلی باید بگذاریم کنار ولی خب میتونستن یه داستان راست درست منظمی بسازن مثل داستان های نظامی چنانکه نظامی اسکندرنامه رو ساخته ولی میبینیم که در فرامرزنامه و در سامنامه و همچنین در بحمن نامه با اینکه نامه چاعری که میگویند او سروده این مال پنجم از شوهرهای بسیار قدیمه با این حال میبینیم که بسیاری بیتهای سخیف بسیاری صحنه آرایی های سوست رکیک و بسیاری مطالب کسل کننده ملالخیز در اینا وجود داره و احتمال قوی هست که فردوسی همه اینا رو دیده و به نظر آورده و چون دیده که به درد کارش نمیخوره به کلی از اینا صرف نظر کرده و اینها رو فرو گذاشته و پرداخته به همون داستان هایی که خودش دلش میخواست. حالا بنده یه مختصری هم در باب خود رستم و سهراب ارز کنم در ابتدای گزارشم هم ارز کردم که داستان رستم و سهراب به هیچ تردیدی معروفترین داستان شاهنامه فردوسی است و احتمالا هیچ ایرانی و هیچ فارسی زبانی نیست که نام این داستان رو نشنیده باشه و چند بیتی از این داستان یا چند ای از این داستان رو به خاطر نداشته باشه اما از نظر ارزش هنری مسئله به این صورت کاملا به این ترتیب نیست داوری در باب او بسیار کسان که خود بنده هم جز اونا هستم داستان رستم و اسفندی رو از نظر هنری اوج هنر فردوسی می‌شناسم بنده و کسانی که مثل من نظر دارن و در نتیجه داستان رستم و سهراب رو اندکی فقط فرود مرتبه او میدونم بسیاری همه هستن که خیر و هر حال من کاری به اون مطلب ندارم مطلب این است که از لحاظ زیبایی و از لحاظ هنر گروهی میتقدن که داستان رستم و سهراب در درجه دوم و بعد از داستان رستم و اسفندیار قرار داره و حال اینکه ازار شهرت در مرتبه اوله و هیچ داستانی از لحاظ شهرت به پای او نریسه این یک نکته است که من نمی‌خواستم ارز کنم نکته دومی که میخوام به عرض برسونم این است که شاهنامه فردوسی تنها منبع و تنها مرجعی است که داستان رستم سهراب در او آمده به عبارت دیگه باید عرض کنم که قسمت‌های بسیاری از مطالب شاهنامه در منابع مختلف عیناً آمده مثلا فرض فرمایید در کتاب تاریخ به طور کلی تاریخ تبری تاریخ مسعودی یعنی مروج الزهب و معادن الجوهر تاریخ همزه اسفحانی همزت ابن الحسن اسفهانی به نام سنی ملوک الارز والانبیا کتاب سعالبی که به نام قرار و اخبار ملوک الفرس و سیره همه و تحت عنوان شاهنامه سعالوی دو بار به فارسی ترجمه شده اینا مطالب مطالبی که در شاهنامه آمده کم و بیش در این مدارک و در این مراجع هم هست به همون ترتیب با مختصر اختلافی کمی بیشتر کمی کمتر یکی دیگه از کتابهایی که هست که در این زمینه خیلی خوبه کتاب مجملات تباریخ و که مؤلفش معلوم نیست ولی متن رو مرحوم بهار تحصیل کرده و چاپ کرده اونجا هم تمام این ربایت ها هست ولی داستان رستم و سهراب تنها مرجع قدیمی و اصیلی که داره یعنی تنها جایی که این داستان آمده شاهنامه فردوسی هست حالا این شاید این احتمال تقویت بشه که فردوسی این داستان رو از زبان گوینده شنیده یا اینکه یکی از گویندگان این داستان رو به صورت نوشته داشته در اختیار اختیارو گذاشته و حال اینکه مؤلفان دیگر هیچ کدوم این داستان رو یا نداشتن یا لا ازشون باز نمونده که دست ما برسه با این حال باید عرض بکنم که نه چنین است که داستان رستم و سهراب شهرت نداشته باشه و در همون روزگار در روزگاری که فردوسی رو به می آورده شناخته نباشی بنده در کتاب سبک شناسی که نوشتم و در حقیقت رساله دکتری بنده بوده در باب سبک قراسانی این قدیمترین اشعار فارسی در باب سبکشون کنچکابی کردم در ضمن اسم قهرمانان هماسه ملی رو که پیش از تدوین شاهنامه یا لعقل پیش از شهرت یافتن شاهنامه برای که شاعران معاصر فردوسی مثل, دقیق، مثل فرخی، مثل انصری، مثل منوچهری و امثال اینا یا شاعران قدیمتر مثل رودکی اینا شاهنامه رو ندیده بودند فردوسی هم در روزگاری که شاهنامه رو تدوین میکرده و هنوز تموم نشده بوده که کسی از مضمونش خبر نداشته بنابراین اگر در آثار این قبیل شوعرا شوعرای معاصر فردوسی یا قدیمتر از فردوسی اسم این قهرمانان هماسه ملی بیاد نشان این است که این ها در بین مردم رواج و شهرت داشته و مردم اونها رو میشناختند و بنده بعضی از اینا رو درآوردم و حالا به عرضتون میرسونم عرض کنم که یکی فرخی است در یه شعری میگوید که ایا به آزاد مگه آزاد ترز سطحاتم ایا به معرک مردان ترز سطحرام باز در جای دیگری در بیت دیگری میگوید که چشم دارم ز خداوند که او خواهد یافت آن بزرگی که همی یافت به مردی سهراب باز در بیت دیگری در دیوان فرخی آمده است که برای ممدوهش ای امارت را چو جمشید ای ولایت را چو جم ای شجاعت را چو سهراب ای سیاست را چو سام بنابراین جمشید و صهراب و سام در بیت فرخی آمده است و حال اینکه هنوز یا روایت های ملی یعنشاهنام فردوسی تدوین نشده بوده یا اگه تدوین شده به نظر او به احتمال قوی نرسیده یا مثلا قطران تبریزی شاعر همون روزگاران میگه که همیشه گفت همی پور رستم آن سهراب چو سوی ایران آورد لشکر توران که من پسر بابم و رستمم پدر باشد دگر چه باشد دیهیم دار در گیهان این مال قطران عرض کنم که در این حال باید ارز کنم که به قدری این روایت ها اختلاف داشته در اون روزگاران که مثلا شاعری مثل فرخی میگوید که بهمن و کیخسرو و اصفندیار اینا در فنون جنگی و کارای سپاهکشی و آده و پهلوانی شاگرد رستم اول بیتاشو میخونم؟ بیت مال مال فروفیست بهمنان گه روستم را چند گه شاگرد شد تا خصالش بی خلل گشت و فعالش منتخب همچنان کیخسرو و اسفندیار گرد را رستم دستان همی آموخت فرهنگ و عدل ما در شاهنامه تنها کسی رو که میدونیم که رستم تربیتش کرده در میون این اشخاصی که فرقی اسم بره بهمن و وقتی که اسفندیار به تیر رستم کشته میشه در ضمن در موقعی که دیگه داشته ساعتهایی بیشتر از زندگیش باقی نمونده بوده بهمن رو به اون میسپره و میگوید که این بعد از من جانشین منه و به تخت خواهد نشه و امیدبارم که تو او رو تربیت کنی و آین پهلوانی و پادشاهی رو به او بیاموزی و رستم هم قبول میکنه و این کار میکنه کس دیگری که به سراحت در شاهنامه فردوسی نام برده شده و گفته شده که از دوران کودکی او رو به دست رستم سپردن و رستم او رو به توران برد به زابل برد و رستم او رو به زابل برد و همت به تربیتش گماشت و تمام فنون پهلوانی و سپاهیگری رو به او آموخت سیاوش پسر کیکابوس سیاوش رو میگه که حکیم توس میفرمد که وقتی که رستم سیاوش رو دید به او مهر آورد و او رو دوست داشت و به پادشاه گفت اگر اجازه باشه من تربیت این بچه رو به عده بگیرم کابوس هم موافقت کرد و سیاوش رو به رستم سپردند و او رو برد و تربیت کرد اما بنابرای اونچه در شاهنامه آمده است کیخوسرو تا 13-14 سالگی در توران بود و در میون شبانان زندگی میکرد افراسیاب گذشته بودش او رو که بین شبانان باشه برای اینکه راه و رسم سلطنت و اینا رو یاد نگیره و فیلش یاد هندوستان نکنه و از نجاد و نصبش خبری پیدا نکنه و به فکر رفتن و پادشایی کردن اینو نباشه. ولی گیو داماد رستم و پسر گودرز به فرمان کیقابوس میاد به توران هفت سال در توران میگرده در بیابون و دشت و همه جای توران رو زیر پا میگذاره تا بالاخره کیخسرو رو پیدا میکنه و از میون مملکت دشمن یکه و تنها، خودش یکه و تنها، کیخسرو هم یکه و تنها، همراه مادرش اینها رو میاره و از آب یعنی از سیهون و که سرحد بین ایران و توران بوده میگذرونه و کیخسرو رو میاره، کیخسرو وقتی به ایران میاد مینشینه به تخت سلطنت، بنابراین فرصتی که او برود و تحت تعلیم رستم قرار بگیره اصلا وجود نداشته شاید رستم اول بار که چشمش به دیدار کیخوس رو میفته موقعی بوده است که برای تبریک سلطنت او میاد به پایتخت که شاه رو ببین و همچنین اسفندیار مطلقا اصلا شاگرد و تربیت شده رستم نبود در داستان رستم و اسفندیار بیت هایی هست که نشون میده که اینا همدیگر مطلقا ندیده بودن و به همین دلیل در اولین دیدارشون با این که اسفندیار آمده بوده که بند بر پای رستم بذاره بند بر دست رستم بگذره و او رو به صورت اسیر و به صورت احانتها آمیزی برداره ببره به دربار گشتاسپ ولی اولش که با هم خوش بش بشمی رستم قسم میخوره و تأکید میکنه که به کی به کی قسم من اگر دیدار سیاوش رو میدیدم بیش از این شاد نمیشدم که تو شازاد رو دیدم و این اولبار بوده که چشم رسلم میفتده به اسفندیار که همونجا هم به هر حال سرنوشت قطعی اسفندیار تعییم میشه و از چند روز به دست رسلم کشته میشه بنابراین هیچ وقت بنابرای روایت شاهنامه اسفندیار هم شاگرد رستم نبوده و حال اینکه که فرخی تصریح میکنه که بوده حالا یکی از دو حال بیشتر نیست و این رو هم جواب قطعیشو متاسفانه باید از خود فررخی پرسید یکی این است که شاید آشنایی زیادی به داستانهای حماسه ملی نداشته و همینطوری گفته که کیخسرو و اسفندیار هم شاگرد رستم بودن یا اینکه که مبنی بر اینکه رستم تربیت پادشاه بزرگی مثل کیخسرو یا شاهزاده پیروز جنگی مثل اسفندیار رو به عهده گرفته و اونا رو به شایستگی تربیت کرده وجود داشته که فروخی ازش آگاه بوده و فردوسی اونها رو در شاهنامه نیاورده و فرو گذاشته و از این داستانهایی از بین رفته ما بسیار داریم که بعضی از اینا تا روزگاران خیلی نزدیکه به ما هم رسیدن ولی متاسفانه از بین رفتن برای نمونه باید ارز بکنم که در تاریخ سرجام ملکم،, ملکم در حدود سال 1810 یعنی 160 سال پیش آمد به ایران به عنوان سفیر به عنوان ایلچی دولت انگلیس و بعد رفت و آشنا بود به زبان فارسی و کتاب بزرگی نوشت کتاب تاریخی نوشت به نام تاریخ سرجام ملکم که این در همون روزگار ناصرالدین شاه هم ترجمه شد ترجمه بسیار فصیح زیبایی از انگلیسی به وسیله شخصی به نام میزد اسماعیل که در ادب فارسی هم دست داشت و انگلیسی هم می‌دونست شاید احیانا مقیم هندوستان بود و اونجا انگلیسی فرا گرفته بود به هر حال ترجمه بسیار فصیح قشنگی از این کتاب هست کتاب رو من وارد قسمت ارزش تاریخیش نمیشم اون چیزهای گذشته از کوششیست مطالب گذشته سرجام ملکم یک کوششیست برای اینکه که روایت های ملی کیخسرو و کیقوباد و کیقابوس و همسال اینا رو با سلسله هخامنشی که به روایت یونانیان به دستش رسیده بوده اینا رو با هم تطبیق کنه و حالا تا چقدر این درست درست نیست الان مورد بحث ما نیست منتها بخش آخر کتاب که مربوط به روزگار زندگی خود سرجان ملکن و مربوط به صحنه‌هایی است که در ایران دیده خودش به چشمش و اینا رو یادداشت کرده مطالب بسیار بسیار گرانبها و با ارزشی است که صحنه‌های خیلی خیلی جالب توجه و یگانه‌ای رو از زندگی مردم ایران در این کتاب در اون روزگار در روزگار فتح علی شاه و محمد شاه ترسیم میکنه و سند بسیار بزرگی است. در عین حال ملکم در اونجا از کتابهای حماسی وقتی که اسم میبره میگه کتابی به نام اسفندیارنامه هست که اگر چنین کتاب وجود داشته باشه که دلیلی هم نداریم بگیم که ملکم کتاب ندیده رو همجوری از حفظ و به خیال خودش میگه لاغوت کتاب رو دیده این اسفندیار نامه باید کتابی باشه کتاب هماسی باشه در شرح پهلوانیها و جنگ های اسفندیار که قسمت هایش هم در شاهنامه فردوسی و در هزار بیت دقیقی آمده مثل هفتخان اسفندیار و مثل جنگ هایی که عرض کردم در رساله یادگار زریران آمده شاید مطالب دیگری هم در این کتاب اسفندیارنامه نامه بوده به هر حال بنده هیچ سراغی از روزی که در جوانی این کتاب سرجام ملکم رو خوندم دنبال این بودم که اثری اسمی رسمی از این کتاب پیدا بکنم ولی تا کنون هیچ سراغی از این کتاب پیدا نکردم کتاب ظاهرا بعد زید سرجام ملکم رو دیده مفقود شده بنابراین یه قسمتی از داستانها که از بین رفته یه قسمت هست که فردوسی اونها رو فرو گذاشته به دلایلی و یه قسمت هم هست که در نتیجه اختلاف روایات فردوسی ناچار بوده اون روایتی رو که به نظرش معهولتر و تر میرسیده برگزینه و همین کارم کرده اینا مطالبه بود که بنده میخواستم پیش از ورود به داستان رستم و سهراب به عرض برسونم و بعد دیگه این روایات ملی و داستانهای ملی که عرض کردم شهرت بسیار داشته این از روزگاران بسیار قدیم یعنی تا اونجایی که اسناد حکایت میکنه در صدر اسلام حتی در روزگاری که هنوز رسول اکرم هجرت نفرموده بودن یعنی به پیغمبری رسیده بودند، ولی سال هجری تقویم هجری هنوز آغاز نشده بود شهرت این روایت های ملی از مرز ایران گذشته بود و تا قلب جزیرت العرب تا مکه رسیده بود یک شخصی هست به نام نظرب نهارست که بنده حالا نصب دقیقش هم عرض میکنم این تو کتابهای اسلامی نوشته است که این یکی از شیاطین قریش بود. این مردی بود که تجارت می‌کرد و میآمد به هیره در مرز ایران و میرفت و گویا کتابهایی از ایرانیان می‌خرید و در او جنگ ها و روایت‌های تاریخی ایرانیان بود و اینا رو برمی‌داشت می‌آورد در اونجا و برای اعراب نقل می‌کرد. و چون از دشمنان قسم خورده رسول اکرم بود و یکی از علمدار قبیله قرش در جنگ بدر بود این مینشست و یعنی مترست بود هر جا رسول اکرم شروع می‌کردن به اینکه مطالبی از قرآن کریم و آیات قرآن رو بخونن این نزد ابن حارث و می گفت که این داستان که محمد برای شما میگه اینا جوز رو الابولینه او حدیث آدوسمود رو برای شما میگه ولی من بهتر از او قصه میگم برای شما من قصه های رستم و اسفندیار و پادشاهان عجم را آوردم و این به دروغ میگه که این وحیه او این داستانها رو داده نوشتن همونطوری که من هم داستانهای پادشاهان ایران رو دادم, نوید دادم نوشتن و آوردن و برای شما نقل میکنم شاهنامه با گرشاسنامه که بلافاصله بعد از او شماره دوم رو میگیره در حقیقت از زمین تا آسمان گروه مثلا آثار دیگری از قبیل اسکندرنامه نظامی یا نظیر او رو به جای گرش معرفی میکنند ولی حالا ما در پی صلاح ارزیابی هنری گرش نیستیم بحث ما این است که چطور شده که فردوسی این داستان رو که بوده اصلا نیورده و جز یه ذکر بسیار مختصری چند کلمه ای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 گرشاس هیچ وقت در هیچ جنگی تعم شکست رو نچشیده و بنابراین به نظر اسدی میاد که او افضل از رستم باشه در حقیقت هم اسم گرشاس بر وستا هست یعنی از پهلوانان بسیار بسیار قدیمی است و جز جاویدانان هم هست به عقیده زردشتان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 مستند و مربوط به یکی از شوهر نسبتا قدیمی ایران به نام ایران ابن اول خیر که این کتاب هم اخیرا چاپ شده و هست کتاب های سام و کتاب دیگری به نام فرامرز نامه که داستان پلبانی فرامرز پسر رستمه و بهمن نامه همچنین اینا در هندوستان به چاپ سنگی رسیده بوده و اخیرا بهمن نامش،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 اصلا بافت داستانهای اون پهلوانان دیگر رو شایسته برای اینکه یه شاهکار هماسی به وجود بیاره نمی دیده. و حقیقت غضیه این است که مثلا گرشاستنامه اسدی که خودش 9000 بیت بیشتر نیست و شاهنامه در عصد 60000 بیت بوده و الان 52000 بیتش در اختیار ماست تقریبا یک ششم شاهنامه فردوسی است با این حال اولا بسیار خوندنش دشواره یعنی خواننده بارها ملول میشه و دلش میخواد که داستانو بگذاره زمین و دوم اینکه در حقیقت به قدری مطالب اندرزی و سفارش های تربیتی و پند و نصیحت در این داستان هماسی هست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 برتری داره نسبت برستن برای اینکه ایش شکست نخورده بعد در شرح احوالش نیمی از سرگذشتش رو پند و اندرز دادن به بچه هاش و به کسان دیگه و پاتران خلاصه بحانه همیشه پیدا میکرده برای اینکه شروع کنه به پند و اندرز دادن این کتاب هماسی بی نمیتونه باشه یا همینطور کتاب های دیگر حالا سامنامه یا فرامرزنامه یا نامه بنده اینا رو دیدم یا اینکه که واقعا اینها توانای شعر گفتن نداشتن و شعرشون مملو و از عیب و نقصه یا اینکه که اونا درست گفتن البته به فردوسی رسیدن که افسانه است او که به کلی باید بگذاریم کنار ولی خب میتونستن یه داستان راست درست منظمی بسازن مثل داستان های نظامی چنانکه نظامی اسکندر نامه ساخته ولی میبینیم که در فرامرز نامه و در سام نامه و همچنین در بهمن نامه با اینکه بهمننامه نامه شاعری که میگویند او سروده این مال قرن پنجم از شوهرهای بسیار قدیمه با این حال میبینیم که بسیاری بیت های سخیف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 به عبارت دیگه باید ارز کنم که قسمت های بسیاری از مطالب شاهنامه در منابع مختلف اینن آمده مثلا فرض فرمه در کتاب تاریخ به طور کلی تاریخ تبری تاریخ مسعودی یعنی مروج الزهب و معادن الجوهر تاریخ همزه اسفحانی همزته ابن الحسن اسفهانی، به نام سنی ملوک الارز والانبیا کتاب سعالبی که به نام قرار و اخبار ملوک الفورس و سیره همه و تحت عنوان شاهنامه سعالبی دوبار به فارسی ترجمه شده اینا مطالبی مطالب که در شاهنامه آماده کم و بیش در این مدارک و در این مراجع هم هست به همون ترتیب با مختصر اختلافی کمی بیشتر کمی کمتر یکی دیگه از کتابایی که هست که در این زمینه خیلی خوبه کتاب مجمل التواریخ والقصص که مؤلفش معلوم نیست ولی متن رو مرحوم باهر تصحیح کرده و چاپ کرده اونجا هم تمام این روایات ها هست ولی داستان رستم و سهراب تنها مرجع قدیمی و اصیلی که داره یعنی تنها جایی که این داستان آمده شاهنامه فردوسی هست حالا بنابر شاید این احتمال تقویت بشه که فردوسی این داستان رو از زبان گوینده‌ای شنید یا اینکه یکی از گویندگان این داستان رو به صورت نوشته داشته در اختیار او گذاشته و حال اینکه مؤلفان دیگر هیچ کدوم این داستان رو یا نداشتن یا لا ازشون باز نمونده که دست ما برسه با این حال باید عرض بکنم که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 اسم قهرمانان هماسه ملی رو پیش از تدوین شاهنامه یا اقل پیش از شهرت یافتن شاهنامه برای که شاعران معاصر فردوسی مثل فروخی، مثل انصری، مثل, مثل منوچهری و امثال اینا یا شاعران قدیمتر مثل رودکی اینا شاهنامه رو ندیده بودن فردوسی هم در روزگاری که شاهنامه رو می میکرده و هنوز تموم نشده بوده که کسی از مضمونش خبر نداشته بنابراین اگر در آثار این قبیل شعرها شعرهای معاصر فردوسی یا قدیمتر از فردوسی اسم این قهرمانان هماسی ملی بیاد نشان این است که این قصه ها در بین مردم رواج و شهرت داشته و مردم اونها رو میشناختن و بنده بعضی از اینا رو درآوردم و حالا به عرضتون میرسونم عرض کنم که یکی فروخی سیستانی در یه شعری میگوید که آیا به بزم گه آزاد طرز صدهاتم آیا به معركه مردان طرز صد سهراب باز در جای دیگری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 و کیخسرو و اسندیار اینا در فنون جنگی و کارای سپاه کشی و آده و پهلوانی شاگرد رستم اول بیتاشو میخونم بیت مال, مال فرخی بهمنان گه رستم را چند گه شاگرد شد تا خصالش بی گشت و فعالش منتخب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 بهمن رو به او میسپره و میگوید که این بعد از من جانشین منه و به تخت خواهد نشست و امیدوارم که تو او رو تربیت کنی و آیین پهلوانی و پادشاهی رو به او بیاموزی و رستم هم قبول میکنه و این کارو می‌کنه. کس دیگری که به استراحت در شاهنامه فردوسی نام برده شده و گفته شده که از دوران کودکی او رو به دست رستم سپردند و رستم او رو به توران برد به زابل برد و رستم او رو به زابل برد و همت به تربیتش گماشت و تمام فنون پهلوانی و سپاهیگری رو به او آموخت سیاوش پسر کیکابوس بود سیاوش رو میگه که حکیم توس میفرماد که وقتی که رستم سیاوش رو دید به او مهر برد و او رو دوست داشت و به پادشاه گفت اگر اجازه باشه من تربیت این بچه رو به عهده بگیرم کابوس هم موافقت کرد و سیاوش رو به رستم سپردن و او رو برد و تربیت کرد اما بنابراین اونچه در شاهنامه آمده است کیخوسرو با 13-14 سالگی در توران بود و در میون شبانان زندگی میکرد افراسیاب گذشته بودش او رو که بین شبانان باشه برای اینکه راه و رسم سلطنت و اینا رو یاد نگیره و فیلش یاد هندوستان نکنه و از نژاد و نصبش خبری پیدا نکنه و به فکر رفتن و پادشاهی کردن اینو نباشه ولی گیو داماد رستم و پسر گودرز به فرمان کیگاووس میاد به توران هفت سال در توران میگرده در بیابون و دشت و همه جای توران رو زیر پا میگذاره تا بالاخره کیخسرو رو پیدا میکنه و از میون مملکت دشمن یک و تنها خودش یکی و تنها کیخسرو هم یکی و تنها همراه مادرش اینها رو میاره و از آب یعنی از سیحون و که سرحد بین ایران و توران بوده میگذرونه،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 ولی اولش که با هم خوشوبش می کنن رستم قسم میخوره و تاکید میکنه که به کی به کی قسم من اگر دیدار سیاوش رو می دیدم بیش از این شاد نمی شدم که تو شازاده رو دیدم و این اول بار بوده که چشم رستم می به اسفندیار که همونجا هم به هر حال سرنوشت قطعی اسفندیار تعییم میشه و بعد از چند روز به دست رستم کشته میشه. بنابراین هیچ وقت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 و از این داستان از بین رفته ما بسیار داریم. بعضی از اینا تا روزگاران خیلی نزدیک به ما هم رسیدن ولی متاسفانه از بین رفتن. برای نمونه باید عرض بکنم که در تاریخ سرجام ملکم سرجام ملکم در حدود سال 1810 یعنی 1670 سال پیش آمد به ایران به عنوان سفیر به عنوان ایلچی دولت انگلیس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 و حالا تا چقدر این درست درست نیست الان مورد بحث ما نیست. منت بخش آخر کتاب که مربوط به روزگار زندگی خود سرجان ملکنه و مربوط به صحنه هایی که در ایران دیده خودش به چشمش و اینا یادداشت کرده مطالب بسیار بسیار گرانبها و با ارزشی است که، سحنه خیلی خیلی جالب توجه و یگانهی رو از زندگی مردم ایران در این کتاب در اون روزگار در روزگار فتح شاه و محمد شاه ترسیم میکنه و سند بسیار بزرگی است. در عین حال ملکم در اونجا از کتاب های هماسی وقتی که اسم میبره میگه کتابی به نام اسفندیارنامه هست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 اینا مطالبی بود که بنده می‌خواستم پیش از ورود به داستان رستم و سهراب به عرض برسونم و بعد دیگه این روایات ملی و های ملی که عرض کردم شهرت بسیار داشته این از روزگاران بسیار قدیم یعنی تا اونجایی که اسناد اقراریت میکنه در صدر اسلام حتی در روزگاری که هنوز رسول اکرم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 و چون از دشمنان قسم خورده رسول اکرم بود و یکی از سه علمدار قبیله قرش در جنگ بدر بود این می نشست و یعنی مترست بود هر جا رسول اکرم شروع می به اینکه مطالبی از قرآن کریم و آیات قرآن رو بخونن این نظر ابن میآمد می آمد و می گفت که این داستان هایی که محمد برای شما میگه،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 دادم نو... دادم نوشتن و آوردم و برای شما نقل میکنم